نوار شماره 537 دی قسمت چهارم کتاب آنک کارنینا، اثر تستست، ترجمه محمد علی شیرازی صفحه نبت ای که به زحمت چنیده میشد گفت ولی زندگانی ما از روز اول به هم پیوست سرونسکی گفت راست است ولی این پیوند باید علنی و آشکار شود آنا گفت چگونه چگونه آیا من زوجه شوهرم نیستم؟ سرونسکی گفت برای هر مسئله و مشکلی راه حلی وجود دارد و من بدترین راهحل ها را بر این اینگونه زندگی کردن خود و برتری می دهم. آیا گمان می کنی من, من نمیبیم که چگونه تو به خاطر شوهرت به خاطر پسرت رنج و درد میکشی؟ آنها گفت: « نه، من به خاطر شوهرم رنج نمیبرم. من ابدا وجود او را هم حس نمی کنم. فروفکی گفت: ولی من یقین دارم که تو به خاطر او رنج میبری و درد میکشی؟ زن گفت: ولی او چیزی نمی‌داند. پس از ادای این کلمات چشمانش پر از عشق و خجلت شد و در تعغییب سخنان خود گفت تو را به خدا دیگر صحبت از او به میان نیاور فصل هشتم پیش از آنکه فرانسگی چندین بار خواسته بود درباره عاقبت رابطه و علاقه خود با آنا کارنینا صحبت کرده و موقعیت خودشان را روشن سازد ولی آنها از روبرو شدن با حقیقت گریزان بود ناگزیر در این مرتبه فرونسکی تصمیم گرفته بود که قضیه را روشن سازد از این رو با لحن جدی گفت ما کاری نداریم که او داند یا نمیداند. چیزی که هست این است که تو نمیتوانی در این وضع به خصوص فعلا باقی بمانی زن گفت از من میخواهی چه بکنم؟ فرانسکی گفت اغیره من این است که حقیقت را به او گفته و پس از آن برای همیشه به را ترک گویی آنها گفت بر فرزان که من چنین این کاری را کردم آیا میدانی نتیجه چه خواهد بود؟ آنا چشمانش برق مکرامی زده و در دنبال سخنان خود گفت نتیجه این خواهد بود که شوهرم پس از شنیدن حقیقت بانک برمی آورد، آه تو مرد دیگری را دوست نداری و رابطه ی پلید و نامشروعی باوی داری. من چندین بار پیش از این تو را از خطری که بستگی به دیانت و عرف عادت و جامعه دارد برحضر نمودم ولی تو به سخنان و نصایح من گوش ندادی. من اکنون به تو و مشروقت اجازه نمی دهم که نام من و اسم و میخواست بگوید که اسم پسرم را لکه دار سازی. سپس از ادامه کلام خود دادی کرد زیرا آنها پسر خود را مقدس و عزیز می شمرد و حتی به خود اجازه نمی داد که اندیشه بری هم درباره وی بکند. آنا کارنینا در تقریب سخنان خود گفت آری او این کلمات را به من خواهد گفت و به من اجازه نخواهد داد که خانه او را ترک گویم و اقداماتی لازمی برای محصول ماندن اسم و شرافت خود اتخاذ خواهد کرد و نخواهد گذاشت رسوایی و افتضاح به بارایت آری ای دوست نتیجه اعتراف به حقیقت این خواهد بود فرونسکی مثل اینکه قانع نشده باشد گفت هرچه باشد حقیقت را باید گفت و پس از آن ما آن آنگونه رفتاری که لازم است خواهیم کرد آنها بگو ببینم چرا او را ترک نمیگویی آخر این وضع قابل تحمل نیست و نباید ادامه پیدا کند آنها گفت آه، آیا تا از من میخواهی که او را ترک گویم و چون معشوقه با مترسی در خانه تو زندگی کنم؟ فرونسکی با لحن ملامتامی زیر لب گفت آنا چه میگویی؟ آری، من محشوقه تو بشوم، و آینده و همه چیزم را ویران سازم و برای بار دوم خواست بگوید آینده پسرم ولی جرأت بردن نام فرزند خود را نکرد فرونسکی که می دانست کارنینا سریخ و لحجه و راستگوست تعجب می کرد که چگونه به یک چونم زندگی آمیخته به دروغ و نفاق و درویی تن می دهد. و نمیدانست می دانست که سبب اصلی پسرش می باشد که جرأت ذکر نام او را در سخنان خود ندارد. هر وقت آنها فکر فرار را می کرد به یاد پسر خود می و پیش خود می که آن طفل محسوم همین که بفهمد مادرش او را گذاشته و فرار نموده است چه خواهد کرد؟ از این فکر سر تا پا و پیش خود می گفت که آینده پسرم چه خواهد بود؟ آنکان نینا در حالی که از روی مهر و وفا دست معشوق خود را می گرفت گفت من از تو خواهش می کنم که دیگر در این موضوع با او صحبت نکنیم ولی آنا نه نه حل این مشکل به این آسانی نیست که تو تصور میکنی آیا یا به من قول میدهی که دیگر در این باره با من صفت نکنی من به هر چیزی که تو مایل باشی قول میدهم ولی تو میدانی که من تا تو را این گونه نگران و محزون و اندیشتاک میبینم خیالم راحت نمیشود آنا گفت من؟ راست است من بعضی اوقات محزون و نگران میشمم ولی هر وقت تو در این باره با من صحبت می بسیار متفکر و قمنات می گردم. مرد گفت من متعجبم که چرا تو این فداکاری را در من می و هرگز خودم را از این همه بدبختی و اندوه که برای تو ایجاد کردم نمی بخشم. کارنینا نگاهی از روی مهر او افکنده و گفت چه بدبختی؟ من چون گرسته می باشم که به اندازه کافی غذا پیدا می ممکن است آن گرسته لباس پارهی داشته باشد و خیر جالت بکشد. ولی بدبخت نخواهد بود من بدبخت باشم خیر خیر من خوشبختم و در آن موقع در چشمانش برق عجیبی را که به خوبی با آن آشنا بود مشاهده کرد آنکارنینا رو به سوی او برگردانید سر او را بین دو دست گرفت مدتی به او نگاه کرد آنگاه لبان و چشمان او را بوسید و آهسته گفت حالا بروز. فصل نهوم. علاقه کارنین به زوجه خود، آنکاردینا در ظاهر مانند سابق بود و تغییری که در کارنین میکردید این بود که در کارهای خود بیشتر جدیت و فعالیت میکرد. همین که فصل بهار رسید به یکی از شهرهایی که آب معدنی داشت برای استهمان به عادت همیشگی رفت و نیز بنا بر عادت خود در ماه ژوئیه برگشت. با نشاط و فعالیت بیشتری به کارهای خود ادامه داد. با اینکه فصل گرما رسیده بود، کارنین مرکز عملیات خود را شهر پترزبورگ قرار داده بود، در حالی که زوجش به خانه ییناقی خودشان که در بیترهوف واقع شده بود، انتقال یافت. کارنین پس از آن صحبتی که بین او و زوجش آنها در شب نشینی که در خانه شاهزاده خانم بتسی شده بود، درگرفت گرفت دیگر نگذاشت همسرش از رشک و غیرت و حسادت که به او دست داده بود مطلع شود کارنی با اینکه همسر خود آن کارنینا را خیلی دوست می‌داشت ولی نسبت به او احساس نفرت و انزجار در خود می نمود. برای اینکه خود را از فکر زن و بچه و خانواده خیش بیرون آورد پشت به کار داده و از هر گوشه و کنار برای خود کار میتراشید. بدین وسیله کارنیم توانست رفتار زن خود را ندیده بگیرد. زوجه کارنین، آن کارنینا بر این داشت که تابستان را در بیترهوف بگذراند. همچنانی که کنتس لیدیا تابستان را در بیترهوف میگذراند. کنتیز با دیده تحسین و تعجب به کارنین و زوجش مینگریست. ولی اتفاقا در آن سال کنتیز حاضر نشد تابستان را در آن ایلاق بگذراند. بالاتر از این، کونتست به گوشه و کنایه وجود الفت و محبت ناروایی را که بین آنا و فرانسکی بود به کارنین فهمانید. ولی کارنین با خشونت کنتس را خاموش کرده گفت که رفتار همسرش بالاتر از آن است که مورد شبهه قرار گیرد و از آن موقع کارنین از کنتس دوری می جست. کارنین متوجه نبود و با اینکه که نمی‌خواست متوجه باشد که مردم با نظر شک و شبهه و پرسش به همسر او نگاه می‌کنند. آری خود را زحمت نمیداد که به سخنان مردم که درباره همسرش میگویند و نسبت‌هایی به او می‌دهند فکر و اندیشه کند. با تمام این احوال او از ته دل حس می‌کرد که وی شوهر فریب خورده و اهانت می می‌باشد که عرض و ناموس او لگت مال شده و شرافتش بر باد رفته است این امر بیاندازه او را محصون و اندیشناک مینمود. او سابق بریم زندگانی زناشویی خوشی داشت و در کمال سعادت زندگی می کرد. اگر به او گفته می شد که فلان زن به شوهر خود خیانت می کند، سرش را از روی تأصف حرکت میداد و می تقصیر شوهر آن زن است چرا شوهر از اول جلوی زن خود را نگرفته و او را قانع نساخته و او را به راه راست و مستقیم برنگردانده است؟ اکنون که این مصیبت بر خود کارنین وارد آمده است، نه فقط حاضر نیست جلوی زن خود را بگیرد، بلکه همچنین حاضر نیست به این امر مسلم یعنی خیانت زن خود اعتراف کند. او از این لحاظ به این امر اعتراف نمی کند، زیرا آن را خیلی مخوف و هولناک و غیر طبیعی می بیند. از وقتی که کارمین از خارج مراجعت کرده، فقط دو مرتبه به خانه تابستانی خود که در یه لاغه واقع شده و همسرش در آن زندگی میکرد، سردد. بار اول به تنهایی غذا صرف کرد و در مرتبه دوم شب را با بعضی از مهمانان خود گذرانید. ولی او ابداً مانند سالهای پیش که عادت داشت شب را در آن خانه یعنی خانهی که زرش آن را با خیانت خود پلید کرده بود، سپری ننمود آن روزی که برای مسابقه معیم شده بود، کارنین کارهای زیادی داشت، ولی با وجود این، همین که وی وام دادان برنامه خود را معین کرد، تصمیم گرفت همسر خود را در ویکر هوف ملاقات کرده و پس از آن به تماشای مسابقه افسوانی که بنا شده بود قیصر با وزرایش برای دیدن آن حضور به هم رساند، برود. همچنین کارنین تصمیم گرفت برای حفظ ظاهر و کده کردن زبان مردم از آن به بعد لاقل هفته یک بار به دیدن کارنینا به بیچرحوف برود. کارنینا در برابر آینه ایستاده با کمک ندیمه خود آنوشکا آرایش و زینت خود را تکمیل می کرد. در این موقع صدای چرخهای درشگی را که نزدیک می شد چنید. دم در ایستاد. آننا پیش خود گفت پیی پیش از مهد معین آمده است آنگاه از پنجره نگاه کرد کالیسکی را مشاهده نمود همچنین کلاه سیاه و بلند کارنین و گوشهای معروف او را دیده مبهوت شد با احساس نفرت و امزجار در زیر لب گفت او چه بچه‌عمسی آیا او شب را در اینجا خواهد گذرانید در هر حال چون مجبور بود به استقبال شوهر به شتابت لذا به سوی او دوید و تبسم مکرامیزی از روی تضویر و ریا به او نمود دست خود را دراز کرد و با لحن محبت آمیزی گفت آه چقدر خوب شد ما امروز به مسابقه اسب سواری خواهیم رفت و بدون شک تو شب را در اینجا خواهی ماند ولی از بچشانسی من به بتسی قول دادم که با او به میدان مسابقه بروم همین که کارنی نام بتسی را شنید ابرو در هم کشید و گفت من سعی ندارم بین دو نفری را که از هم جدا نمی‌شوند جدا کنم. من پیاده به میدان مسابقه خواهم رفت. زیرا را به من نصیحت کردم که زیاه راه بروم. آنا گفت: هنوز به شروع مسابقه خیلی مانده است. آیا یک فنجان چای برایت بیاورم؟» آنگاه زنگ را نواخت و به خادمهی خود گفت: «یک فنجان چای بیاور و به سیرج بگو که پدرش اینجاست آنگاه رو به شوهر خود کرده و خیره به او نگریست و گفت: از شهرت چنین برمیآید که خیلی خسته هستی. مرد گفت: راست میگویی، من بار سنگینی از مسئولیت و مشکلات بر دارم. آنا سوالاتی از تندرستی و کارهای او نمود و اصرار کرد که در اوقات فراغت با او در ویترهوف بگذراند و استراحت نماید. آنا کارمینا خیلی ساده و طبیعی حرف میزد چشمانش از خوشحالی می درخشید ولی فریب آن سادگی و خوشحالی ظاهری را نخورده و یقین حاصل کرد که آنا هم مایل است مانند او حفظ ظاهر را به نماید و هم به کار خود میرسد. صحبت آنها و عادی بود ولی با وجود این همین که بعدا آنا کارمینا آن را به خاطر آورد از پذویر و ریای خود احساس شرمندگی کرد سیرج آمد نخست با نگرانی و شرمندگی به مادر و پس از آن به پدر نگاه کرد ولی کارنینا متوجه این نگاه نشد زیرا نمی‌خواست متوجه چیزی بشود کارنین در حالتی که آهسته از روی نوازش بر روی شانه پسر خود میزد گفت: گفت فرزند عزیزم تو بزرگ شدی حالت چطور است؟ خمسردی و بیتنایی سابق پدر در قلب پسر در این لحظه تاثیر کرده بود و نگاهی به مادر خود کرد و مثل این که از وی درخواست حمایت می نماید چون این به نظر انکارنینا رسید که طفل می خواهد گریه کند. از این رو به یاری وی شتافت. دست کارنین را از روی شانه طفل برداشت و با او به بالکن رفت. در آن لحظه کالسکی یه خانم بتسی را دید و فریاد براورد بتسی آمده و من هم باید بروم. آنگاه کلاه خود را برداشته و برای خدا دست به سوی شوهر دراز کرد خیلی خوشفقت می اگر تو هم فعلا فیلن خداحافظ کاردین دست آنا را بوسید آنا رفت در حالی که چهرش از خوشحالی می درخشید ولی از شوهر دور شد اثر سر گرمیه لبان شوهر را بر روی دست خود حس کرده یک لحظه نفرت و امزجاری به او دست داد وقتی کارنین به میدان مسابقه رسید آنها در کنار شاهزاده خانم بیتسی در بالکن بزرگی که برای اشخاص محترم و معروف اختصاص داده شده بود نشست. آنها شوهر خود را دید که نزدیک می شود. در میدان مسابقه دو مردی که در آن کارنینا تأثیر به سزایی داشتند دیده می شدند. یکی شوهرش کارنین و دیگری معشوقش سرونسکی. آنا شوهر خود را دید که از میان ازده میگذرد و به این و آن سلام می کند. در برابر احترامی که حاضرین به او می کردند، تبسوم تکبرامی زیبر لبان خود ظاهر می سازد. آننا می دانست که شوهرش خیلی از احترام خوشش می آید و روی همین اصل از وی متنفر بود. آنا پیش خود چنین گفت، او همه اش در فکر رتبه و مقام و احترام می باشد. آنها از نگاه های شوهرش به جایگاه زنان دانست که او دنبال وی میگذد. ولی کارنین به علت جامعه های عبرشمی رنگ و رنگ نتوانست آنها را تشخیص بدهد. و آنها هم سعی نکرد شوهر خود را از محل خود با خبر سازد. شاصاد خانوم به چی کارنین را دید و فریاد براورد؟ آنها شوهرت کارنین؟ چیزی نگذشت که کارنین جای آنها را پیدا کرد. او آمد، و لحظه بعد در کنار آن نایستاد و در حالی که تبسام مرموزی برلوان داشت گفت آه این لباس های شیک و رنگارنگ رنگ خانوم ها چشمان اشخاص را خیره کرده و نمی آنها چیز دیگری را ببینند در این لحظه وزیر جنگ و یکی از افسران ارتش در میدان مسابقه ظاهر شده و درباره آن مسابقه خطرناک مشغول صحبت شدند. آنها به سخنان شوهر خود گوش داد ولی چون این به نظرش رسید که صدای شوهرش گوشش را می آذارد. آنا که به کلمات شوهرش ایمان و اعتقاد نداشت و میدانست که او از روی تکبر و خودخواهی سخن میگوید پیش خود گفت او همیشه دروغ می گوید و بی جهت به خود می بالد. او شخص منافق و دو می باشد او به ظاهر بیشتر اهمیت می تا به عرض و خود او اگر سعی میکرد که مرا به قتل برساند یا فرنسکی را به قتل میرسانید من او را گرامی و محترم میداشتم و او را از هر حیث شایسته میدانستم. ولی متاسفانه چون این کاری نکرده و نمی کند. چرا؟ برای اینکه او در محیط دروغ و نفاق زندگی میکند و فقط به ظاهر اهمیت میدهد. آنها این چیزها را پیش خود میگفت در حالی که نمیدانست به راستی از شوهر خود، چه می و میخواهد کار کارنین چگونه شخصی باشد آننا نمیدانست که پر حرفی و یا به سرایی شوهرش که او از آن بیاندازه متنفر و بیزار است فقط مظهری از مظاهر تشویش و نگرانی و ناراحتی شوهرش میباشد. حال او مثل طفلی میباشد باشد که بر روی زانو بیفتد همانطوری که طفل ساق پای خود را به سرعت حرکت میدهد تا از تأثیر درد بکاهد همچنین شوهرش کارنین هم محتاج نشاط و انبساطی است تا تأثیر دردی را که از دیدن او و معشوقش به رنفگی به ویدست میدهد بکاهد سرانجام مسابقه شروع شد تماشاچیان همه گیز ساکت شده و از جای برخاستند. و چشمان خود را به ادهی افسر سواری که میخواستند در مسابقه شرکت کنند دوختند. آنها دوربین را به چشمان خود نزدیک کرد و دیدگانش را خیره به یک نقطه و یک شخص دوخت و آن شخص هم فرنسکی محشوقش بود. چون کارنین شوهر آنها چندان علاقمد به دانستن نتیجه مسابقه نبود لذا از میدان مسابقه سربرگردانید و با چشمان خسته خود تماشاچیان را نگریست. در این زم چشمش به همسر خود آنا افتاد رنگ از شهره زیبای آنا پریده بود و نفسش در نمیابد بدون شک وی در آن لحظه متوجه هیچ چیز و هیچ شخص نبود جز شخص واحد و معینی کارنین چشم از آنا برداشت و به تماشا چیان دیگر نگاه کرد و پیش خود گفت همه یه تماشا چیان مانند آنها نگرانی دارد پس نباید از نگرانی آنها تعجب کرد برای باری دوم بدون اختیار به چهره ی زوجه خود نگاه کرد و از علاماتی که بر چهره پریده و دل نقش بسته بود چیزهایی خواند که قبلا قادر نبود آن چیزها را بخواند. یکی از سواران در پشت نرده ای افتاد تماشاچیان چون دریای خروشانی به جنبش در آمدند و زنان از شدت ترس و وحشت فریادهای بلندی کشیدند. کارنین از برق چشمان زوجه خود آنا فهمید که آن سواری که افتاد همان شخص نیست که آنا خیره به او نگاه می کند. مسابقه ادامه پیدا کرد و سوار دیگری افتاد. یکی از خانمها فریاد کشید که این خیلی مخوف و وحشتناک است. آیا این صحنه های دلخراش تماشا هم دارد؟ کارنین دید که آنها نه حرکت می کند و نه نفس می گویی متوجه هیچ چیز در اطراف خود نیست. و بالاتر از آن متوجه سقوط سوار دومی نشد. مسابقه دهندگان به نرده بزرگ رسیدند. با اینکه آن ناهوش و حواسش متوجه فرانسکی بود و خیره از دور بی را نگاه می کرد. یک حس باطنی و مرموزی به او فهماند که کارنین با نگاه های آتشین او را می نگرد. آن لحظه ای سر برگرداند و شوهر خودکارنین را با نگاه های سرد می و مثل این بود که به وی می گوید من به تو اهمیت نمی دهم. ولی همین که دو مرتبه به میدان مسابقه نگاه کرد دید که بر بردمین خورد و اسب هم به رویش افتاد بیخیار فریادی از روی ترس و وحشت برکشید فریادهای دیگری هم در همین لحظه از زنان دیگری شنیده شد ولی فریاد آنها از همه بلند تر بود دوربین از دست آنها افتاد و خم شده آن را برداشت ولی نتوانست بر روی پا بیستد و بیحال دو مرتبه بر روی نیمکت نشد از آن لحظه چون پرنده تیر خورده بود زخمی بی اختیار اطراف خود را نگریسته می‌خواست چیزی بگوید ولی نمیدانست چه بگوید در آن موقع کارنین به او نزدیک شده و به زبان فرانسوی گفت بیا برویم ولی آننا سخن او را نشنید زیرا وی با تمام حواس خود به سخنان افسری که در همان لحظه از میدان مسابقه آمده بود گوش می افسر میگفت: میگویند که ساق پایش شکسته و اسبش کشته شده است. آننا با دوربین و آن ای که فرونسکی افتاده بود نگاه کرد ولی چون مردم زیادی در آن نقطه جمع شده بودند چیزی را ندید. آننا برای بار دیگر از جای برخاست و مثل این بود که خیال دارد برود. کارنین در حالی که دست به روی شانه او میگذاشت گذاشت گفت اگر مایل به رفتن هستی من بازوی خود را تقدیم تو می کنم بیا برویم ولی آننا با سردی عقب عقب رفت و بدون آن که به او نگاه کند گفت خیر خیر مرا به حال خود واگذار در این لحظه یکی از افسران آمده چگونگی را به ارتقای قیصر رسانید و فوری انتشار یافت که فروسکی آسیبی ندیده ولی اسبش به قصر رسیده است در آن لحظه آنها بر روی نیمکت قرار گرفت و چهره را در میان دو دست پنهان کرد. کارمین متوجه شد که سینه آنها به شدت بالا و پایین می رود و گریان است و نمیتواند اشک ها و آهای خود را پنهان سازد. کارمین نزدیک آنها شده و در برابر او ایستاد تا وی را از انظار مخفی کند. پس از لحظه ای به آنها گفت برای بار سوم بازوی خود را تقدیم تامی کنم. آنا به او نگاه کرد، ولی ندانست چه جواب بدهد. در این لحظه شاهزاده خانم به سیب یاری آنا شتافت و گفت: آقای کارنی من آنا را آوردم و خودم برمیگردانم. کارنین با اینکه خشمناک شده بود، با لحن مؤدبانه‌ای گفت: شاهزاده خانم، پوزش میخواهم. این مسابقه اعصاب همسرم را خرد کرد و باید او را به خانه ببرم. آنها با وحشت و اطراف خود نگریسته سپس از جای برخاست و دست در بازوی شوهرش به راه افتاد کارمین با دوستان و آشنایان خود در بین راه خداحافظی می کرد و آنها هم مجبور بود با دوستان آشنایان خود تودیع کند ولی او خیلی نگران بود و از خود میپرسید: آیا راستی فرنسگی نجات پیدا کرده و پایش نشکسته است؟ آنا در کالسکه پهلوی شوهرش نشسته و عبداً کلمه ای بر زبان نیاورد. کالسکه هم از میدان مسابقه دور شد. کارمین در بین راه فکر میکرد که زوجهش آنا چون خیلی بد کرده از اینکه حفظ ظاهر را ننموده و انزار را متفجح خود ساخته است، لذا لازم است این چیزها را به او بگوید. ولی کارمین نمیدانست که چگونه این موضوع را شروع کند و سرانجام پس از مدتی تردید چنین گفت: مایه تعجب است که چگونه غریزه بشری همه را وادار می کند که ناظر این مناظر دلخراش باشند آن از روی تحقیر فریاد برآورد چه میگویی من از کلام تو چیزی سردر نمیآورم لحن صدای آنا آن شوهرش را به خشم آورده تصمیم گرفت با سراحت لهچه آنچه را در دل دارد به او بگوید و از این رو به زبان فرانسه چنین گفت من باید به تو بگویم که رفتار امروزت خیلی زننده و بیجا بود بوده است. آنها با صدایی بلند در حالی که از روی گستاخی خیره به چشمانش مینگریست گفت چگونه رفتارم بیجا و زننده بوده است؟ کارمین گفت چرا وقتی یکی از سواران افتاد تو این گونه متوجهشون نگران شدی؟ کارمین منتظر جواب او شد ولی چون آنا ساکت ماند کارمین در تقیب سخنان خود گفت من چندین بار به تو گفتم و باز میگویم که نباید رفتارت طوری باشد که به سر زبانها افتد و از تو بدگویی نمایند سابق بر این من در روابط داخلی خودمان با تو صحبت میکردم. ولی اکنون من درباره آن روابط چیزی نمیگویم و فقط راجع به حفظ ظاهر با تو صحبت میکنم. من سریع هم به تو میگویم که رفتار امروز از زننده و ناروا بود و مایل نیستم باره دیگر تکرار شود. آننا نیمی از صحبتهای شوهر خود را نشنید، زیرا وی همه اش درباره سقوط فیرانسکی میکرد. ولی همین که کلام کارنیم به پایان رسید، تبسم تحکم آمیزی بر لبانش نخش بست. کارمین تصور کرد که آننا روی تمسخر و استحضاق تبسم میکند کارمین به جز توقعی از آنا نداشت. آری، او در میدان مسابقه به قدری زنین و برانگیخته شده بود که نمیتوانست آرام بگیرد و فقط مایل بود که آنا بگوید که او بیجهت مهران و مشکوک می‌باشد. کارنین در تعقیب سخنان خود گفت: شاید من اشتباه کرده باشم. در این صورت از تو پوزش میخواستم آنا در حالی که با ناامیدی و رامی نگریست، آهسته پاسخ داد: خیر، تو اشتباه نکرده ای؟ من حقیقتا وقتی دیدم او بر زمین میخورد متوجه و گران شدم. من ظاهرا به سخنان تو گوش میدهم. ولی در حقیقت به او فکر و اندیشه میکنم. من او را دوست میدارم. او محشوق من میباشد. من از تو بیزارم. من نمیتوانم با تو زندگی کنم. اصلون هر کاری که میخواهی با من بکن. آنگاه چهره خود را در میان دو دست پنهان کرد. و های هایی بهنایه گریستن را گذاشت کارنین از جای خود حرکت نکرد و نگاهی هم بر آننا نیفتند ولی چهرش چون صورت مردگان سفید شد آن دو به این حالت باقی ماندند تا اینکه کالسکه آنها به خانه نزدیک شد در این موقع کارنین رو به آننا کرد و گفت آری من من با وجود این مایلم ظاهر را حفظ کنم تا اینکه در اینجا صدایش لرزان شد برای حفظ شرافت خود تصمیمی اتخاذ نمایم و من زمن تو را از تصمیم خود آگاه خواهم ساخت کالسکه توقف کرد کارنیم همسر خود را تا دم در همراهی کرد و در برابر مردم برای ظاهر بر دست زوجه خود فشار آورد سپس کالسکه برگشت و به کالسکه چی عمر کرد که او را به پترسبورگ ببرد چند دقیقه بعد یکی از گماشتگان آمده نامه ای را که از بیت‌سی رسیده بود به آنا داد. آنا نامه را گرفته باز کرد و آن را بدین گونه خواند. دربارۀ غالیفه که تحقیقات کرده و دانستم که او صحیح و سالم است. آنا از خواندن این چند کلامه چه چهره‌اش باز شده و زیر لب گفت: آه چه خوشبختی!